جاناتان مرق دریایی نوشته ریچارد باخ بخش سفون جاناتان به آرامی سخرهای دور را دور می‌زد و همه چیز را زیر نظر داشت فلچر پرنده جوان سر سخت واقعا یک شاگرد پرواز کامل بود او در هوا نیرومند و سبک و سریع بود اما مهمتر از همه اشتیاقی آتشین به پرواز داشت در این لحظه شکل هم و خاکستری رنگی به همراه یک شیرجه پدیدار شده و با سرعت 240 کیلومتر کیلومتر در ساعت از کنار مربی خود گذشت. به طور ناگهانی تلاش دیگری برای یک چرخش آهسته ی عمودی شانزده نقطه ای را آغاز کرد. در حالی که نقاط را بلند می شمرد، هشت، نه ده، می بینی دارم از سرعت هوا می گذرم، یازده، من ترمز درجا مثل ترموزهای تورا میخواهم دوازده ولی نمیتوانم از پس آن برایم سیزده این سه نقطه آخر بدون چارده آخ بازماندن زودرس فلچر در اوج خشم آزرده که او را به خاطر شکستش در پیدا داشت. عقب افتاد و با ضربه ای سخت و حشیانه همراه چرخشی درونی واشون شد سرانجام به خدا آمد و نفس نفس زنان در سیمتری زیر سطح پرواز مربی خود جای گرفت. وقت خود را با من به هدر می‌دهید جاناتان. من زیاد از حد کند. ذهنم من خیلی احمقم. بارها و بارها تلاش می کنم ولی هرگز نمیتوانم از پس آن برایم جاناتان مرغ دریایی پایین را نگریس و حرفش را تایید کرد. مطمئناً تا زمانی که خود را به سختی بالا میکشی هرگز نمی‌توانی این کار را انجام دهی. فلچر تو در آقاد 64 کیلومتر ساعت را از دست دادی باید نرم باشی محکم و استوار ولی نرم این را به خاطر بسواد او خود را به سطح پایین کنار مرغ جوان تر رساند حالا بیا با هم تلاش کنیم در هماهنگی و به نحوه بالا کشیدن توجه کن ورود به این مرحله نرم و آسان است در پایان سه ماه جاناتان شش شاگرد دیگر داشت همه ترد شده بودند، اما درباره این نمونه تازه شگفتنگیز پرواز که به خاطر لذت بردن از پریدن انجام می کنج کاف بودند. با وجود این برای آنان ساده تر بود که برنامه های را تمرین کنند تا انگیزه پنهان در پس آن را درک کنند. جاناتان اصرها در ساحل چنین می گفت. هر یک از ما در واقع نمونه های واقعی از مرغ بزرگ هستیم، نمونه های نامحدود آزادی و پرواز دقیق گامی به سوی بیان طبیعت واقعی ماست. هرچه که ما را محدود می بایستی کنار بگذاریم به خاطر این است که همه این تمرین های سرعت بالا و سرعت پایین و حرکات دشوار و شاگردانش خسته از پرواز روزانه خابیده بودند. آنان تمرین را دوست داشتند زیرا سریع و حیجان انگیز بود و عطش آنان را برای فراگیری که با هر درسی بیشتر میشد شد ارزا می کرد اما هیچیک از آنان حتی فلچلیند پرنده به این باور که پرواز اندیشه ها می تواند به اندازی پرواز با دو پر واقعی باشد نرسیده بودند. در وقت دیگری جاناتان می گفت همه بدن شما از نوک پر یک بال تا نوک بال دیگر چیزی بیش از تصور شما درباره شکلی که قادر به دیدنش هستید نیست قید و بند اندیشتان و نیز قید و بند بدنتان را بشکنید اما مهم نبود که چگونه اینها را بیان می کرد مانند یک داستان تخیلی لذت بخش به نظر می آمد. و آنچه که بیشتر به آن نیاز داشتند خواب بود تنها یک ماه بعد بود که جاناتان گفت زمان بازگشت به فوج فرارسیده است هنری کالوین مرغ دریایی گفت ما هنوز آماده نیستیم ما مترودیم نمیتوانیم خود را برفتن به جایی که استقبال ما نمی کنند مجبور کنیم میتوانیم جاناتان پاسخ داد ما آزادیم به هر کجا مایلیم برویم و آنچه که هستیم باشیم و از شنها جدا شده و به سمت مشرق پیچید و به سوی سرزمین زادگاه فوج مرغان رفت شاگردانش نگران بودند زیرا قانون فوج این بود که یک مطرود هرگز باز نگردد و این قانون در ده هزار سال حتی یک بار نیز شکسته نشده بود قانون میگفت بمانید جاناتان میگفت بروید و همکنون تقریبا در یک کیلومتری آب بود اگر آنها بیشتر صبر می کردند، او به تنهایی با یک فوج دشمن می شد فلچر با گفت خب اگر بخشی از فوج نیستیم مجبور نخواهیم بود از قانون پیروی کنیم مجبوریم علاوه بر این اگر نبردی در کار است در آنجا بیشتر می یاری کنیم تا اینکه در اینجا بمانیم و بنابراین در آن صبح دهم آنان از سمت غرب پرواز کردند هشت از آنان در آرایشی به شکل لوزی نوک بالهایشان تقریبا به هم میخورد با سرعتی معادل شش کیلومتر در ساعت به ساحل شورای فوج مرغان رسیدند جاناتان سرگروه بود، فلچر به نرمی در بال راست او و هنری کالوین پرتهر و سرزنده در سمت چپ او حرکت می کردن. سپس آرایش پرواز با آهستگی به سمت راست چرخید، آنگونه که پرنده از سطح پرواز به سوی وارونه شدن به سمت سطح و بازگشت به سوی سطح پروازش را انجام میداد. بعد به نرمی بر همشان میوزید، آرایش سف مرغان مانند یک شمشیر قولاسا، نزاعها و حیاهوی زندگی روزمره فوج را پا از هم پاره میکرد. چشمان هشت هزار مرگ منتظر بیان حتی پلک بزنند به آنان دوخته شده بود. هر یک از هشت پرنده یکی پس از دیگری در یک چرخش کامل به چالاکی خود را بالا کشیدن، و در سراسر مسیر پرواز کرده و با آرامش تمام برشنها نشستند سپس مانند یک رویداد هر روزه جانتان مرغ دریایی شروع به انتقاد از پرواز کرد برای شروع او با لبخندی کنای آمیز گفت همه شما برای جمع شدن کمی دیر عمل کردید انگار اخگری در میان فوج افتاده بود این پرندگان مترودند و حالا بازگشتهاند و این این نمیتواند واقعی باشد. پیشگویی های فلچر درباره نبرد در میان زدگی فوج مرغان ناپدید شد. خب مطمئنا بسیار خوب اینها مترودند یکی از مرغان جوان تر گفت اما راستی بچه ها آنها کجا یاد گرفتند که این چنین بپرند؟ تقریبا یک ساعت طول کشید که سخن کوهن سال ترین مرغ به همه ی فوج برسد آنها را نادیده بگیرید مرقی که با یک مترود صحبت کند خود نیز مترود است مرقی که به یک مترود نگاه کند قانون فوج را شکسته است از آن لحظه به بعد با انبوهی از پرهای خاکستریشان به جاناتان پشت کردند اما او اعتنا نمیکرد جلسه تمرین خود را مستقیما در ساحل شورا برگزار میکرد. و برای نخستین بار شاگردان خود را به سوی مرز تواناییشان هل میداد. در پهنه آسمان فریاد زد مارتین مرغ دریایی تو گفتی که پرواز با سرعت پایین را میدانی هیچ نمیدانی مگر اینکه آن را ثابت کنی پرواز کن مارتین ویلیام کوچک مرغ دریایی که به آرامی در زیر فرمان تند مربی خود گرفتار شده بود یک خور در حدی که برای خودش نیز غافلگیر کننده بود به نابقی از پرواز در سرعت‌های پایین مبدل شد در سبک بالترین نسیمها او توانه پرهایش را خم کند و بدون حرکت یک بال نیز از شنها به سوی عبرها بالا رود و بازگردد به همین طریق چارلز رولاند مرغ دریایی در میان باد پرتوان کوهپیما تا ارتفاع 7200 متری پر باز کرد در هوای سرد سبک با بالهایش به رنگ نیرگون فرود آمد و شادمان و شگفت زده بود با این تصمیم که فردا بالاتر نیز بپرد فلچر مرغ دریایی که حرکات دشوار را از هر چیز بیشتر دوست داشت بر چرخش آرام 16 نقطه ای تسلط یافت و روز بعد با یک چرخش سگانه از آن گذشت پرهایش در زیر نور سپید خورشید در ساحلی که بر کرانه های آن بیش از یک جفت چش پنهانی نگاهش میکردند می‌درخشیدند هر ساعت از روز جاناتان در کنار تک تک شاگردانش حضور داشت. روش ها را رو نشان میداد، توصیه و سختگیری میکرد و به آنان مود میداد. همراه با آنها با هدف ورزش کردن در میان ابر و طوفان میپرید. در حالی که فوج مرغان گرد آمده بر زمین در تیر بختی به سر می میبرد. زمانی که پرواز خاتمه می شاگردان بر شنها می و در آن حال سمیمان تر به جاناتان گوش فرا می دادند او اندیشه شورانگیزی داشت که آنها نمی درک کنند اما بعد از آن اندیشه را مطرح کرد که آنها توانستند دریابند به تدریج در شبانگاه دایره دیگری بر گرد شاگردان شکل گرفت دایری از مرغان کنجکاو که بیان آنکه توسط یک دیگر یا سایرین دیده شوند در تاریکی به گفتگوها گوش فرا میدادند و پیش از فرار روز ناپدید می شدند یک ماه پس از بازگشت گروه جاناتان نخستین مرغ فوج از خط عبور کرد و درخواست فراگیری پرواز را کرد با این درخواست ترانسلوول مرغ دریایی محکوم گردید و نشان مرغ ترد شده بر او زده شد و از آن پس به عنوان هشتمین شاگرد جاناتان پذیرفته شد. شب بعد کرک مینارد مرغ دریایی متعلق به فوج لرزان از شنها گذشت، بال چپ خود را رها کرد و بر پای جاناتان افتاد. کمکم کن. او خیلی آهسته مانند مردی محتضر گفت، بیش از هر چیزی دیگر در جهان شیفته پروازم. جاناتان گفت: پس بیا همراه من از زمین اوج بگیر، تمرین را شروع کنی. شما متوجه نیستید بالم بالم را نمیتوانم تکان بدهم مینارد پرنده تو این آزادی را داری که خودت باشدی. باشی باشی خویشتن واقعیت همین جا و همین حالا و هیچ چیز نمیتواند راه تو را سد کند این قانون مرغ بزرگ است قانونی که وجود دارد میگویی میتوانم بپرم من میگویم تو آزادی به سادگی و به سرعت کرک مینارد بالهایش را گشود و بی تلاش در آسمان تاریک شبانگاهی برخاست. با فریاد او فوج مرگان از خواب برخاستند. با همه توان خود از آن بالا از ارتفاع 150 متری فریاد کشید. من می‌توانم بپرم به پرم گوش و دهید. من می‌توانم پرواز کنم. با طلوع خورشید تقریباً هزار مرغ در خارج از دایره شاگردان ایستاده بودند و با کنجکاوی به مینارد نگاه میکردند. آنها اهمیت نمیدادند که دیده می یا نه. گوش فرامی دادند و کوشش میکردند که سخنان جاناتان مرغ دریایی را بفهمند. جاناتان از چیزهای خیلی ساده سخن می اینکه یک مرغ حق دارد پرواز کند و آزادی طبیعت اصلی هستی اوست، و هر چیزی که علیه این آزادی عمل کند باید کنار گذاشته شود حتی اگر تشریفات، خرافات و یا محدودیت در هر شکل آن باشد صدای از میان جمعیت شنیده شد کنار گذاشته شود حتی اگر قانون فوج باشد جاناتان گفت: تنها قانون واقعی آن است که به آزادی منتهی شود قانون دیگری وجود ندارد صدای دیگری برخواست چگونه از ما انتظار داری که مانند تو بپریم تو برگزیدهی و از مرغان والا مقام و الهی هستی به فلچر نگاه کنید لوول، چارلز لوران، جودیلی آیا آنها نیست برگزیده و عالی مقام و الهیاند؟ برتر از شما نیستند برتر از من نیست تنها تفاوت این است که آنها شروع به درک هستی واقعی خیش کردند و به تمرین آن می پردازن. شاگردانش و فلچر بابی قراری جابجا شدند، آنها درک نکرده بودند که این همان است که دارند انجام میدهند. جمعیت مرغان هر روز گسترده تر می شد می که پرسجو کنند بد کنند و به ریش خند بگیرند. فلچر روزی پس از یک تمرین پیشرفته سرعت به جاناتان گفت در فود چنین میگویند که اگر تو پسر پرند بزرگ نیستی هزار سال از زمان خود جلوتری جاناتان آهی کشید، او اندیشید این پاداش غلط فهمیده شدن است آنها تو را شیطان و یا خدا می نامن. تو چه فکر می کنی فلچ؟ آیا ما از زمان خیش جلوتری؟ سکوت طولانی حک فرما شد خب این نوع پرواز همیشه وجود داشته است برای آنکه هر پرنده خواستار فراگیری آن را بیاموزد هیچ ربطی به زمان ندارد. شاید ما از رسوم جاری جلوتریم جلوتر از روشی که بیشتر مقام به وسیله آن میپرد. جاناتان گفت: این هم برای خود حرفی است و برای پرواز وارونه مدتی چرخ زد. بدتر از اندیشه جلو زدن از زمان ما نیست. درست یک هفته بعد این واقعه رخ داد، فلچر اصول پرواز سرعت بالا را برای یک گروه از شاگردان جدید نمایش میداد. تازه از شیرجه خود در ارتفاع 2100 متری به درآمده بود همچون ردی از آتش در چند سانتی متری ساحل شتاب گرفت زمانی که یک پرنده جوان که مادرش را صدا میزد در نخستین پرواز مستقیم خود به ناگاه در مسیر او بال گشود فلچلیند مرغ دریایی در یک دهم ده ثانیه برای خودداری از برخورد با پرنده جوان به سختی به چپ پیچید و با سرعتی بیش از 320 کیلومتر در ساعت به صخری از گرانیت سخت برخورد کرد. برای او صخره مانند دری بزرگ و سخت به دنیای دیگر بود. برخوردش انفجاری از حراس و تکانی سخت و لکه سیاه را در او برانگیخت و بعد از آن در آسمانی بسیار شگرف شناور شد. فراموش میکرد و به یاد میآورد و فراموش میکرد. هراسان و اندوهگین و متاسف بود به طرز وحشتناکی احساس تصف داشت صدایی مانند آنچه که در نخستین روز ملاقاتش با جاناتان لیوینگستون مرگ دریایی شنیده بود به سراغش آمد فلچر روش این است که ما تلاش می کنیم به وسیله نظم و شکیبایی بر محدودیت های خود غلبه کنیم ما پرباز از میان سخره را تا زمانی دورتر در برنامه نخواهیم گنجان. فلچر گفت جاناتان معلم او به خشکی گفت و پسر مشهور پرنده بزرگ اینجا چه میکنی؟ سخره؟ آیا من نمرده ام؟ اوه فلج فکر کن اگر حالا داری با من سخن میگویی معلوم است که نمرده اینطور نیست؟ آنچه که تو انجام آن را در پیش گرفتی این بود که سطح آگاهیت را به طور ناگهانی تغییر دادی این دیگر به اختیار توست؟ می توانی اینجا بمانی و در این صحط یاد بگیری که بسیار بالاتر از صد هست که ترک گفتهای و یا اینکه می توانی به عقب بازگردی و با فوج کار کنی. سالخوردگان به نوعی در آرزوی روی دادن یک مصیبت بودند اما آنها از اینکه تو به این خوبی به آنها لطف کردی یک خورده. مسلماً می خواهم به فوج بازگردم. به تازگی با یک گروه جدید شروع کردم. خیلی خوب فلچ آنچرا که درباره این موضوع گفتیم که بدن چیزی به جز خود اندیشه نیست به خاطر بسپار فلچر سرش را تکان داد و بالهایش را گشود و بر روی سخر چش باز کرد در کانون گرد همایی فوج با نخستین جنبش او هیاهوی رعداسایی از جیغ و داد از جمعیت برخاست. او زنده است، او که مرده بود حالا زنده است، با نوک بالش او را لمس کرد، او را به سوی زندگی بازگرداند، پسر پرنده بزرگ، نه، او آن را رد می کند، او شیطان از شیطان آمده است که در میان فوج تفرقه ایجاد کند چهار هزار مرغ در جمعیت بودند، حراسان از آنچه رخ داده بود، فریاد شیطان، همچون طوفانی در میان اقیانوس از آنها عبور کرد با چشمانی شرربار و منقارهای تیز گرد آمدند تا آنها را نابود کنند. جاناتان پرسید اگر اینجا را ترک کنیم احساس بهتری نخواهی داشت فلچر مسلما اگر چنین میکردیم مخالفتی نمیکردمد در آنی از زمان آنها در همبستگی با یکدیگر 500 متر آن طرفتر ایستاده بودند و منقارهای جمعیت مرغان در فضای خالی برق میزد. جاناتان شگفت زده بود چرا دشوارترین کار در جهان این است که پرنده‌ای را متقاعد کنی که آزاد است و اینکه اگر او تنها اندک زمانی را به تمرین بگذراند قادر خواهد بود این را به خود ثابت کند. دشواری کار در کجاست؟ فلچر هنوز از شگفتی تحول رخ داده پلکایش را برهم هم چه کردی؟ چطور به اینجا رسیدی؟ تو گفتی که می از میان جمعیت مرغان خارج شوی، اینطور نیست؟ بله اما تو چطور؟ مانند هر چیز دیگری فلچر، تمرین صبحدم فوج مرغان جنونش را از یاد برد اما فلچر آن را از یاد نبود جاناتان به خاطر داری که مدت ها پیش چه گفتی؟ درباره عشق کامل نسبت به فوج مرگان با هدف بازگشت به سویانها و یاری دادنشان به خاطر آموختن؟ مطمئن نه چگونه می‌توانی به جمعیتی از مرگان که تلاش می‌کردند تو را نابود کنند اشخ ببرزی؟ آه فلچ تو مسلمن نفرت و شیطان را دوست نداری تو باید تمرین کنی و مرق دریایی حقیقی را ببینی نیکی ها را در هریک از آنان ببینی و کمک کنی که آنها نیز در خود ببینند منظور من از عشق همین و این سرورانگیز است وقتی که به آن برسی مثلا پرنده جوان آتشین را به نام فلچر لیند به خاطر می آورم که تازه ترد شده بود و آماده بود تا سرحد مرگ با فوج مبارزه کند و جهنم تلخ خیش را در سخرهای دور برپا کند و حالا او اینجاست و بهشت خیش را برپا می کند و فوج را در آن سور رهبری می کند فلچر به سوی مربی خود برگشت و برای لحظه ای ترس ناگهانی در چشمانش ظاهر شد من و رهبری منظورت چیست؟ من و رهبری این تویی ای که اینجا مربی هستی نمی توانی اینجا را ترک کنی نمیتوانم، فکر نمی کنی که شاید فوجهای دیگری هم وجود داشته باشند؟ فلچرهای دیگری که مانند این یکی به مربی نیاز داشته باشند که به سوی روشنایی هدایتشان کند من جان من تنها یک مرغ دریایی سادم و تو و تصور می تو تنها پسر پرنده بزرگ باشی جاناتان آهی کشید و به سوی دریا نگریست و گفت تو دیگر به من نیازی نداری تو نیاز داری که به شناختن خود ادامه دهی هر روز کمی بیشتر از روز پیش فلچر مرغ دریایی نامحدود او مربی توست تو باید او را بشناسی و تمرینش کنی لحظه ای بعد بدن جاناتان در هوا مقواج شد در ارتعاش بود و به سوی نامرعی شدن میرفت به آنها اجازه نده که درباره من شایعات بیهوده پخش کنند و یا از من خدایی بسازند باشد فلچ من یک مرغ دریاییم میخواهم پرواز کنم شاید جاناتان فلچ بینوا آنچه که دیدگانت به تو میگویند باور نکن همه ی آنچه که میتوانی ببینی محدود است با ادراک خود بنگر آنچه را که آموخته ای بشناس و تو میتوانی پرواز را بشناسی ارتعاش پایان یافت. جاناتان مرغ دریایی در فضای خالی ناپدید شد. پس از مدتی فلچر مرغ دریایی به آسمان پرید و با گروهی تازه از شاگردان که آمادهی فراگیری نخستین درس خود بودند روبرو شد. او با وقار گفت: در آغاز باید بدانید که یک مرغ دریایی نمونه نامحدودی از آزادی است. تجسمی از پرنده بزرگ و تمامی بدن شما از نوک یک بال تا نوک بال دیگر چیزی جز اندیشتان نیست. ملقان جوان حیرت زده او را نگریستند. آنها فکر میکردند این سخنان نمیتواند قانونی برای چرخ زدن باشد. فلچر آهی کشید و از نو شروع کرد. هم آه، خیلی خوب. او این را گفت و با امتقاد آمیز آنها را نگریست. بیایید پرواز در سطح را شروع کنیم. و با هر این سخن در یک لحظه دریافت که دوستش در این مورد که او بیش از فلچر جنبه الهی ندارد حق داشته است او اندیشید جاناتان بدون محدودیت ها خب پس تا زمانی که من هوای سبک عبور کرده و بار ساحل تو پدیدار شوم خیلی دور نیست و قادرم یکی دو چشم از پروازم را به تو نشان دهم پس او تلاش کرد که در دیده‌ی شاگرد دانش به طرز شایسته‌ای جدی باشد. فلچر مرق دریایی ناگهان تنها برای لحظه ای همه آنان را همان همانگونه که واقعا بودند دید و فراتر از دوست داشتن به آنچه که میدید عشق می برزید. بدون محدودیت ها جاناتان به این موضوع فکر کرد و لبخندی زد مبارزه او برای آمختن آغاز شده بود